صفحه 312 هنوز بزن بازرگانان با کباب جوجه رخ به پایان نرسیده بود و مشغول لذت بردن از گوشت جوجه رخ بودند که دو قطعه ابر سیاه بزرگ در آسمان دور دست نظر همه را به خود جلب کرد ناخدای با تجربه که تحت فرمان خودم بود و او را به خاطر تجربیات سفرهای دریاییش استخدام کرده بودم به من هشدار داد که آن دو ابر سیاه دروخ هستند که یکی از آنها مادر همین جوجه ای است که بازرگانان آن را کباب کردند و خوردند به حکم تجربه میدانم که این دو پرنده چه بلایی بر سر قاتلین جوجه آنها در خواهند آورد و بعد ادامه داد من شدیدا توصیه میکنم که هر زودتر به کشتی برگردیم و با حداکثر سرعت از این نقطه دور شویم ما هم بیدرنگ به سوی کشتی رفتیم و پس از سوار شدن با احتیاط کامل به حرکت درآمدیم دو پرندهی حیولا بعد از چند لحظه در آسمان بالای سرمان پدید آمدند و فریادهای ترسناک سر داده بودند و لحظه‌ای که دیدند تخمهاوی جوجه‌ی آنها را شکسته اند و جوجه‌ی در آنجا نیز فریاد خود را به آسمان رساندند و به قصد تلافی دوباره به محلی که از آنجا به پرواز درآمده بودند بازگشتند ما هم در این فاصله مسافت بسیاری در, در دریا پیش رفتیم تا از حادثه شومی که در انتظار انتظارمان بود فرار کرده باشیم همانطور که میراندین چشمان به دو پرنده هیولا افتاد که در فضای بالای کشتی هر کدام تخت سنگی را به منقار بزرگ خود گرفته و یک سر به سوی کشتی سرازیر شدند و بالای سر ما شروع به چرخ زدن کردند و یکی از آنها تخت سنگ را روی کشتی رها کرد اما بر اثر مهارت و سرعت عمل ناخدا و چرخش توندی که به کشتی داد، مسیر کشتی را به سوی دیگر متمایل ساخت و در نتیجه تخت سنگ از این در کنار کشتی در دریا فرود آمد. ولی سنگینی و حجم سنگ به قدری بود که آب دریا را شکافت و ما توانستیم اعماق دریا را ببینیم. اما پرنده هیولای دومی تخت سنگ از را درست در وسط کشتی رها کرد و سنگ با برخورد به میان کشتی آن را کاملا خورد و متلاشی ساخت و کلیه کارگران کشتی و بازرگانان در زیر سنگینی سنگ و یا در دریا از بین رفتن و من آخرین کسی بودم که عمرم به دنیا باقی بود زیرا پس از گوته ور شدن در آب روی آب آمدم و فهمیدم که چه بلایی به سر کشتی و سرنشینان آن آمده آن وقت با تقلیه زیاد تکهی از کشتی شکسته را که روی آب شناور بود به دست آوردم و با کمک آن به شنا کردم پرداختم و خود را روی آب نگه داشتم. خوشبختانه باد موافقی هم می‌وزید و مرا به سوی ساحل دریا جلو می‌برد. من به جزیره‌ای رسیدم که از سطح دریا بلندتر بود و در نتیجه با زحمت فراوان خود را به سطح آن رساندم. روی سبزهایی که جزیره را پوشانده بود نشستم و استراحت کردم و به وقت بد خود می‌اندیشیدم که چرا هر بار نوعی بلا بر سرم میآید. آنگاه از روی سبزه ها برخاستم و به گردش در جزیره پرداختم سراسر جزیره سبز و خرم و مانند باغ بزرگی میوه بود زیرا درختان میوه از هر قبیل در آنجا یافت میشد برخی از درختان دارای میوههای رسیده و برخی دیگر دارای میوههای سبز و نارسیده بود و جالب آنكه در میان آن باغ زیبای طبیعی چشم سارهای متعدد که آب گوارا و پاكیزهای داشتند بر زیبایی تراوت و لطافت هوا افسودند. جده هایی که از میان باغ می‌گذرشتند در امتداد مسیر خود حالت پیچ و خم دلپذیر را به خود می‌گرفتند. من از میوه‌های خوشمزه و عالی خوردم و از آب گوارای چشم سارها هم نوشیدم. احساس راحتی کردم. با فرارسیدن شب من در گوشه راحت و مناسبی بر روی سبزه ها در میان این باغ خوابیدم، اما خوابم برد زیرا در فکر سرنوشت خود بودم و در این جزیره خالی از هر جانداری خود را تنها تر دیده و دچار ترس و نگرانی بودم. در طول شب خود را سرزنش می کردم که از زندگی امن آسوده و همراه با شادی دست کشیده و باز خود را گرفتار حوادث و پیشامدهای غیر قابل بینی کرده بودم. افکار آزاردهنده آنچنان مرا دچار ناراحتی کرد که باز به فکرم رسید بهترین راه برای رهایی از آن در این جزیره دور افتاده آن است که خود را نابود کنم. با این افکار دست و پنجه نرم میکردم تا آنکه صبح شد. از جای برخاستم و در میان درختان، مخصوصاً درختان پربار و زیبا، به قدم زدم پرداختم. اما از وحشت آینده نامعلوم، آنی خیالم راحت نبود. هنوز مقدار زیادی راه نرفته بودم که مشاهده کردم پیرمردی با بدن لاغر و استخوانی بر لب جویباری نشسته، به نظر من آدم ناتوانی جلوه کرد. در نگاه نخستین تصور کردم او هم از سرنشینانی کشتیز. چند گامی به سوی او رفتم و سلام گفتم اما او بدون آنکه جواب سلام مرا بدهد فقط قدر سر خود را به علامت احترام خم کرد پیرمرد با علامت سر و اشاره به من فهمان که میخواهد روی پشت من سوار شود و آن طرف نهر آب از درختان میوه بچیند من فکر کردم که او واقعا به کمک من احتیاج دارد بناوبر این او را روی پشت خود سوار کردم و بعد از آنکه مقداری راه رفتم فهمیدم که نیازی به میوه ندارد. همین که خود را خم کردم که از پشتم پایین بیاید، متوجه شدم که با پاهای خود که دور کبر من حلقه زده بود، مقاومت می کند و همچنان خود را روی پشت من نگه میدارد. ضمناً پاهای خود را به ناحیه گردن من رسانید و گردنم را سخت فشار داد. م که در ابتدا آدم رنجور و ناتوانی به نظر می رسید پاهای خود را دور گردن من گلاب کرد. وقتی پاهای او را دور گردنم حس کردم دیدم پوست او شبیه پوست گاو است. بعد پاهای خود را باز کرد و هر کدام را روی یکی از شانه هایم گذاشت و گلوی مرا محکم با دستهای خود فشار میداد به طوری که نزدیک بود مرا خفه کند. فشاری که به گلویم وارد شد و ترس از خفه شدن سبب شد که از هوش بروم و روی زمین بیفتم با وجودی که از شدت فشار به گلویم بیحال شده و روی زمین افتاده بودم این موجود تا اندازه ای که از فشار خود کم کرد تا من میتوانم نفسی بکشم و زنده بمانم وقتی حالم جا آمد دوباره پای خود را به شکم من فشار آورد و آنچنان محکم به پهلوی من لگت میزد که ناچار شدم برخلاف میل خود راست راه بروم من مجبور بودم که با فشار و فرمان این موجود وحشی و بیفت به هر کجا که او میخواهد حرکت کنم. مرا وادار میکرد به زیر درختان میوه روم تا از آن میوهها به, به هر مقدار که میخواهد بخورد. تمام روز را به این ترتیب زیر فرمان او بودم و یک لحظه از پشت من پایین نیامد وقتی هم که هنگام شب میخواستم روی زمین دراز کشم و استراحت کنم او هم روی من خوابیده بود و گردن مرا در دست گرفته بود. هر روز صبح او با فشار بگردم مرا از خواب بیدار کرده و وادار میکرد از جای خود بلند شوم و او را به اطراف ببرم تا در باغ گردش کند. با پاهای خود به پهلوهایم میزد و فشار میداد شما حال و وضع مرا با این ترتیب حدس بزنید مجبور بودم وزن آن موجود را بر خود هموار کنم و نتوانم از آن رهایی یابم یک روز هنگام صبح همینطور که در حال راه رفتن در باغ بودم چند كدوی قلیایی پیدا کردم. که از بوته خود جدا بودند من بزرگترین آنها را برداشتم و بعد از آنکه که تخمه های آن را بیرون ریختم و تمیز کردم مقداری آب انگور را که با فشردن خوشه های انگور در آن جای دادم و آن را در محلی مناسب در برابر آفتاب قرار دادم بعد از چند روز به سراغ آن رفتم آن را برداشتم و مقداری از آن را که حالا شراب شده بود نوشیدم دیدم شراب خوبی به دست آمده از آن شراب مقداری نوشیدم همه را نیرو بخشید و هم با خوردن آن غم‌هایم را فراموش کردم به طوری که مشغول خواندن و پایکوبی شدم پیرمرد که او را کول کرده بودم وقتی مشاهده کرد که این نوشابه اثر خوبی روی من داشته و بعد از نوشیدن آن نیروی بیشتر و حال خوشتری پیدا ام با اشاره از من خواست که آن کدو را به او بدهم این شراب را که به دهان او خیلی گویا آمده بود تا آخرین قطره نوشید و کاملا مست و از خود بیخود شد و در روی شانه های من شروع به رقصیدن شادی کرد. رف رفته مستی و سستی بر او چیره شد و دیگر توانست خود را بر روی شانه های من کنترل کند و دستها و پاهایش شل شد و من هم با تمام نیرو او را به زمین پرتاب کردم و بی حرکت روی زمین افتاد. در آن لحظه سنگ بزرگی را برداشتم و با بر شدت بر سر او کوفتم. و او را نابود کردم خدا میداند در این موقع چقدر شاد و خوشحال شدم زیرا از فشار آزار آن موجود بیره رهایی یافته بودم دنیا بعد از این بلای بزرگ برایم زیباتر جلوه میکرد به سوی ساحل دریا به راه افتادم و در آنجا کارگران کشتی را دیدم که کشتی آنها لنگر انداخته بود تا از چشم سارها آب آشامیدنی بردارند و در کشتی ذخیره کنند و ضمن اندکی هم در زیر درختان استراحت کنند تا آماده سفر دریایی خود شوند. با کارگران کشتی آشنا شدم و آنها از بودن من در آن ساحل تعجب کردند و من هم برای آنها سرگذشتم را شرح دادم وقتی درباره آن موجود عجیب توضیحاتی دادم همه با هم گفتند آن موجود عجیب دوال نام دارد و همین که روی گرده کسی نشست دیگر امکان ندارد از آن پایین بیاید آنقدر قدر آزار می دهد تا شخصی که به او سواری می دهد نابود گردد. این دوالپا تا این ساعت بسیاری از مردم را به قدر رسانده و شهرتش از این جهت است. این جزیره به خاطر وجود چنان موجودی معروفیت همگانی دارد. مردمی که به اینجا میآیند هرگز به تنهایی به داخل جزیره و به میان درختان نمی روند. تا اولین انسانی هستی که توانسته از دست این دوالپا رهایی یابی بعد از شهر حال خود کارکنان کشتی مرا به نزد ناخدای کشتی بردند ناخدا به من با مهربانی خوشامد گفت و اجازه داد با کشتی او به مسافرت خود ادامه دهم آنگاه ناخدا کشتی را به حرکت درآورد. چندین روز کشتی در دل آبها جلو میرفت تا آنکه بعد از یک هفته به بندر بسیار بزرگی وارد شدیم که خانه های آن شهر زیبا از سنگ های زیبا ساخته شده بود یکی از بازرگانانی که در همان کشتی با مسافر میکرد، با من آشنایی پیدا کرد و مرا همراه خود به محلی برد که برای استراحت و سرگرمی بازرگانان در نظر گرفته بودند. او کیسه بزرگی به من داد و مرا با عده‌ای از اهالی شهر آشنا کرد که کار آنها تهیه نارگیل بود. او میخواست که من هم همراه آنان به جمع کردن نارگیر مشغول شوم و به من گفت هر کاری که این مردم میکنند شما هم همان را انجام بده. از آنها جدا نشو و اگر جدا شوی. زندگی خود را به خطر خواهی انداخت. بعد از گفتن این سخنان، او مقداری غذا و توشه راه به من داد و من هم به همراه آن عدی به راه افتادم. بعد از مدتی راه رفتن، به جنگل بزرگی رسیدیم که درختان بسیار تلومند و بلند سراسر جنگل را پوشانده بود و تنه آن درختان به قدری صاف و لغزنده بود که هیچ کس توانست از آن بالا رود. و خود را به شاخه هایی برستاند که پر از میوه نارگیل بود وقتی وارد جنگل شدیم و زیر درختان نارگیل راه میرفتیم تعدادی از میمون های بزرگ که مانند آدمیزاد بودند و آنها را انسان نما مینامیدند با چابکی از ای به شاخهی می میپریدند و تانک درختها بالا میرفتند این میمون ها دارای قدقامت متفاوت بودند همراهان من سنگ هایی از روی زمین برداشتند و به سوی میمون پرتاب کردند من هم اینن از آنها پیروی کردم و میمون با این عمل خشمگین شدند و برای نشان دادن خشم خود و تلافی این عمل نرگیلها را از شاخه کندند و به سوی ما به زمین پرتاب کردند ما هم نارگیل ها را برداشتیم و در کیسه‌های خود جای می‌دادیم و گاه گاهی هم برای تحریک بیشتر آنها چند دانه سنگی به سوی آنها پرتاب می‌کردیم. و ها با شدت بیشتری به کندن و پتاب کردن نارگیل میپرداختند با این شیوه، توانستیم های خود را از نارگیل پر کنیم. وقتی به قدر کافی نارگیل جمع وری کردیم، به شهر برگشتیم و من در شهر همان بازرگانی که مرا به همراه این عده فرستاده بود دیدم. به من نزدیک شد و همه نارگیل‌هایی را که در کیسه داشتم از من خریداری کرد. بعد هم به من سفارش کرد هر روز همین کار رو تکرار کن تا پول کافی تهیه کنی و بتوانی به سرزمین خود برگردی من هم از راهنمایی و دلسوزی او نسبت به خود تشکر کردم و به همان ترتیب ادامه دادم تا متوجه شدم که پول کافی در اختیارم قرار گرفته و می توانم هزینه سفر دریایی را بپردازم بالاخره به کشتی سوار شدم و بازگانی هم که کالای او کاکاو کا بود با من در این کشتی هم سفر شد ولی من در انتظار کشتی دیگری بودم که به زودی در این بندر وارد شد و من بعد از عوض کردن کشتی نارگیل‌های خود را به این کشتی منتقل ساختم و از بازرگانی که به من کمک کرده بود خداحافظی کردم و او که هنوز کارهای خود را به پایان نرسانده بود نمی با من همسفر باشد و تا پایان کارهایش در آنجا باقی ماند کشتی بان ها را کشید و به سوی آبهایی که جزایر محل کشت فلفل بودند روانه شد در آن جزایر محصولات انواع فلفل به حد فراوان وجود داشت و از آن جزیره به سوی جزیره کوماری واقع در جنوب شرقی شفقاره هندوستان حرکت کردیم در این جزیره مرقوبترین چوبهای عود که بوی خوشی دارد رویده می شود این جزیره مردمانی هستند که خود را متعهد کرده اند. هرگز شراب ننوشند و این به صورت قانون همگانی در است و این مردم هرگز دنبال خوشگذرانی هم نمی روند. من در این دو شهر نرگیل های را با فلفل و چوب اود داد و ستر کردم. در همون جا همراه سایر بازرگنان به قواسی و سید مروارید پرداختم. من چند تن قواص را استخدام کردم تا برای من به عمق دریا بروند و مروارید به دست آورند. مرواریدهای این منطقه از دریا بسیار درشت و بدون رگه است آنها را مروارید ناب میگویند من سوار کشتی شدم و با روحی بسیار خوب و شاد خود را به بسره رساندم و از آنجا به بغداد برگشتم و از فروش فلفل و چوب اود و مرواریدهای درجه اول ثروت بسیار به دست آوردم و برابر ارزش یک دهم آنچه که به دست آورده بودم به نام زکات به مردم توهی دست دادم من در هر سفر به فقرها کمک مالی می کردم بعد از ورود به بغداد و دستگیری نیازمندان با دیدن زن و فرزندان و دوستان و نزدیکان به استراحت پرداختم و خستگی سفر را از خود دور کردم وقتی سندباد سرگذشت خود را در سفر پنجم به پایان رسانید صد عدد سکه به هند باد داد و او هم به اتفاق سایر میهمانان از سندباد تشکر و خداحافظی کرده و به خانه های خود مراجعت کردند فردای آن روز باز به دعوت سندباد به قصر او آمدند و شام را هم مانند شبهایی دیگر در نزد سندباد صرف کردند و بعد از پایان شام سندباد رو به آنها کرد و گفت آماده باشید تا درباره سفر ششم خود برایتان بگویم ششومین سفر دریایی سندباد بحری بدون تردید میل دارید بدانید چطور شد که من بعد از پنج بار سفر دریایی که در هر نوبت گرفتار طوفان و شکست شدن کشتی شده و با وجود آن همه ی خطرات بزرگ که سرانجام جان سالم به در برده بودم باز هم میخواستم خود را دوباره خطر کنم این بار هم میخواستم وقتی خود را آزمایش کنم و با سختی های روبرو رو وقتی فکر میکنم که چرا چنین تصمیمی گرفتم به این نتیجه میرسم که حتما سرنوش به من حکم میکرده که چنین کنم. ولی پس از یک سال از سفر پنجم خود را برای ششمین سفر آمده کردم. خیشان و دوستانم آنچه را در توان خود داشتند به کار بردند تا مرا از این سفر باز دارند ولی ممکن نشد. این بار به جای آنکه سفر خود را از خلیج فارس شروع کنم ابتدا به چندین استان کشور ایران رفتم و از طریق ایران به کشور هند و در آنجا به بندر دریایی مهم میوارد شدم که به کشتی نشستم و ناخدا اعلام کرد که سفر طولانی را در پیش گرفت این سفر بسیار طولانی بود و باز هم در این سفر با ناکامی روبرو شدیم. و داستان این چنین است: که ناخدا و راهنمای راه مسیری را که کشتی باید بپیماید با مسیر دیگری اشتباه گرفت و در نتیجه کشتی، به آب‌های وارد شد که کاملا برای ناخدا آشنا نبود آقابت ناخدا راه را پیدا کرد ولی وقتی دیدیم که ناخدا فریاد و فقان برمیآورد و دستار خود را از سر برداشته و به زمین می زند و های خود را با انگشتانش می کند و مانند دیوانه ها بر سر خود می دوچار ترس شدیم از ناخدا پرسیدیم علت این ناراحتی و بیقراری چیست؟ پاسخ داد من این قسمت از دریا را می شناسم.» و خطرناکترین محل دریاست. هم اکنون جریان بسیار سریع آب کشری را از فرمان من خارج خواهد کرد و در مدت کمتر از یک ربع ساعت همه ما سرنگون و نابود خواهیم شد دعا کنید که خداوند ما را از این گرداب نجات دهد اگر خداوند بی همتا به ما رحم نکند ما جان سالم از این انواج به نخواهیم نخواهیم برد ناخدا پس از گفتن این سخنان دففتها تا بادبان ها را تغییر دهند اما تمام تناب های کشتی بر اثر سر طوفان پاره شد و بادبان ها به دریا افتادند و کشتی بر سر فشار جریانهای تند زیرابی به سوی کشنده شد و هیچ راهی برای کنترل آن وجود نداشت. کشتی همچنان دستخوش جریانات زیرابی بود و به محلی که در مجاورت کوه مرتفعی قرار داشت کشنده شد و در ساحل به گل نشست. و بر سر برخورد به سخته ها در هم شکست اما ما توانستیم جان خود را نجات دهیم و مواد غذایی و مایحتاج خود را به ساحل بیاوریم وقتی به ساحل دریا قدم گذاشتیم ناخدای کشتی گفت خدا با ما بود که توانستیم خود را به اینجا برسانیم اما حالا باید خودمان گورهای خود را به دست خودمان بکنیم زیرا تا قنون کسانی که گرفتار کشتی شکستگی در این قسمت از دریا شده اند جان سالم به در نبرده و هرگز نتوانستند به خانه و زادگاه خود مراجعت کنند. سخنان ناخدا همه ما را دوچار ترس کرده بود و همدیگر را در آغوش گرفتیم و گریه میکردیم. کوهی که ما در دامنه آن پرد شده بودیم، جزیره بزرگ و درازی را می میداد که تخت پاره های شکسته ها در آن انباشته بود و استخوانهای سرنشینان کتی قبلی که از گرسنگی و تشنگی با مرگ روبرو شده بودند در هر گوشه و کناری دیده میشد. ما از دیدن این صحنه در خراش ترسیدیم و به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از انسانهای بیکنا که مسافرین کشتی های توفان زده بوده اند در این گوشه از جهان جان به جان آفرین تسلیم کردند و گوشت بدن آنها تومه پرندگان و جانوران شده و استخانهایشان در آن مکان باقی مانده بود در کنار این استخانها جواهرات و اشیاء گرانبها فراوان دیده میشد که متعلق به مسافرینی بود که جان خود را از دست داده بودند و اموال و جواهرات آنها در گوشه و کنار پخ شده بود مشاهده این اشیاء گرانبها بوی مرگ را به مشام ما میرسانید. و از دیدن آن خوشحال نشدم میدانم که همیشه رودخانه ها به دریا میریزند، ولی در اینجا دیدیم که رودخانه وسیعی از آب شیرین و گوارا از دریا به خارج از دریا روان بود و به سوی کوه و داخل قار تاریکی جریان داشت محلی که رودخانه وارد غار میشد، گشاد و وسیع و بلند بود چیزی که بیش از هر چیز ما را به شگفتی واداشت این بود که این کوه بزرگ را سنگهای کریستال بلور یا و سنگهای گرانبهای دیگر تشکیل می‌داد. مطلب جالب دیگری که نظر همه ما را به خود جرد کرده بود این بود که ماهی های بزرگ مایه از دهانشان خارج می که به رنگ غیر بود در این منطقه از دریا جریانهای سریع زیرابی هر شخص یا شیء یا کشتی را با خود می برد. در اینجا بود که کشتی ما را با سرعت به سوی ساحل کچانید و با شدت به دیواره سنگی کوه کوبانید این منطقه به شکل خلیج است و اگر کشتی و یا قایقی وارد این قسمت از دریا شود دیگر قدرت دسترسی به را نخواهد داشت اگر هم اتفاقا در نتیجه فشار زیاد به بیرون رانده شود سرعت باد و طوفان دریایی آن را در هم خواهد شکست هیچ راهی هم وجود ندارد که بتوان به بالای کوه و قله آن دست یافت ما در یک چنین وضعی گرفتار شده بودیم و راه فرار نداشتیم و از نومیدی مانند اشخاص دیوانه هزیان می‌گفتیم و هر روز در انتظار مرگ بودیم آذوقه خود را به نفع عادلانه تقسیم کرده بودیم تا هر کدام با قدرت و بردباری و تحمل خود کمترین مقدار را مصرف کند تا بلکه چند روزی بیشتر زنده بماند و هر کس می کشید فقط در حدی که از گرسنگی نمیرد از آزوغش استفاده کند آن کسانی که جان خود را از گرسنگی و نومیدی از دست دادند توسط بازماندگان به خاک سپرده می‌شدند و من آخرین کسی بودم که زنده ماندم و وظیفه خود را نسبت به آخرین درگذشته به جا آوردم تعجب نکنید چرا من از نمردم علت علتان بود که علاوه بر صفحه جویی در خوراک با خودم آزوقه هم آورده بودم و از آن استفاده میکردم ولی از آن آزووق چیزی به دوستان خود ندادم زیرا اگر داده بودم برای خودم به مقدار کافی که مرا زنده نگه دارد باقی نمی ماند با وجود این وقتی آخرین نفر را به خاک سپردم آزوقه بسیار ناچیزی برایم باقی مانده بود که فکر کردم با این ترتیب من هم مدت زیادی از عمرم باقی نمانده است بنابراین گوری برای خود کردم و در داخل آن رفتم و منتظر مرگ نشستم زیرا دیگر کسی از ما زنده نمانده بود تا مرا به خاک بسپارد از شما مخفی نمیکنم که در همان حال با خود فکر می میکردم باعث این روزی خودم بودم و خودم این سرنوشت شوم را برای خود ترتیب داده بودم و سزاوار آن هم بودم و به خود گفتم که این سفر آخرین سفر خواهد بود آن هم به شرط آنکه معجزه‌ای رخ دهد ده و از این محلک جان سالم بدربرم. باز هم پروردگار توانا به من رحم کرد و این بار هم نخواست که من در غربت و دوری از خانواده و زادگاه هم بمیرم ناگهان به فکرم رسید که برخیزم و به سمت رودخانه آب شیرین بروم شاید در آخرین لحظه نویدی خداوند وسیله نجاتی برایم بفرستد بیدرنگ برخاستم و به سوی رودخانه رفتم همان رودخانی که از دریا به سوی دهانه تاریک غار در زیر کوه جریان داشت، مدتی به آن خیره شدم و به فکر فرو رفتم که چگونه از این رودخانه باید استفاده کرد. سرانجام به این نتیجه رسیدم که این رودخانه باید از امتداد مسیر خود به نقطه‌ای برسد که از آنجا به خارج راه یابد. آنگاه به فکرم رسید که تختی شناوری درست کنم و روی آن سوار شوم و خود را در استیار جریان رودخانه بگذارم. و جریان آب یا مرا به سرزمینی که محل زندگی است خواهد برد و یا آنکه در این میان جان خود را میبازم. اگر جان خود را باختم که تازه چیزی عوض نشده بلکه فقط شکل مرگ فرق کرده و اگر توانستم از این جزیره مرگ خلاصی پیدا کنم نه تنها از سنوشت شومی که گریبانگیر دوستانم شد فرار خواهم کرد بلکه فرصتی هم پیش خواهد آمد تا به ثروت کلانی هم دست یابم. کسی چه می داند؟ شاید عاقبت خوشنودکنندی در انتظارم باشد پس باید دست به کار شوم حال که بر اثر طوفان به این وطی هلناک ام، ثروت بیکرانی را که از اینجا با خود خواهم برد جبران این همه قصه و رنجا خواهد کرد بلافاصله تلاشم را آغاز کردم و به درست کردن تخته شراوری پرداختم و چندین تخته الوار محکم را با ریسمان و تنابهایی که از کشتی به ساحل آورده بودم محکم وصل کردم و آنها را به یک دیگر بستم وقتی از این کار فارغ شدم تا آنجا که تختیر تا به تحمل های سنگین را داشت از بسته های یاغوت و کریستال و از و سنگ کریستال انبر و انواع دیگر اشیاء قیمتی انواشتم بسته ها را آنچنان محکم به تختیر شناور بسته و جای دادم که حرکت موج رودخانه تعادل آنها را به هم نزند آنگاه یک جفت پاروی محکم ولی نسبتاً کوچک ساختم و بر روی تختی شناور نشستم و آن را در اختیار مسیر رودخانه قرار دادم و خود را تسلیم خداوند کردم. وقتی وارد دهانه قار شدم تاریکی همه جا را گرفته بود و هیچ چیز را نمیدیدم. همین همینقدر می دانم که چندین روز در این تاریکی روی رودخانه شناور بودم و بعد روشنایی از دور پدیدار شد، که نشان میداد سقف قار در اینجا بسیار کوتاه است و باید سر خود را خم کنم و در کمال احتیاط و دقت از انتهای قار به خارج راه یابم از اینکه به دنیای روشن وارد شده بودم بسیار خوشحال بودم ولی گرسنگی و رنجوری مرا سخت رنج میداد چنانچه از آذوقه باقی مانده بود در چند روزی که روی رودخانه و در قار تاریک در حرکت بودم خورده بودم رفت رفته خواب خوشی بر من غلبه کرد بی اختیار پلک‌هایم بسته شد و به خواب فرو رفتم و نمیدانم تا چه مدت در خواب بودم وقتی از آن خواب لذت بخش بیدار شدم حیرت کردم خود را در وسط دهکده زیبایی دیدم که در کنار نهر آبی روی تختی شناور خود دراز کشیدم و اطراف مرا از هر سو بومیان سیاه احاطه احاده همینکه همین که متوجه موقعیت خود شدم نشستم و به آنها سلام کردم و با علامت سر عدایی احترام نمودم ولی مثل اینکه آنها زبان مرا نمیفهمیدند بعد آنها شروع به صحبت با من کردند دیدم من زبان آنها را نمیدانم به خطر حپث موجود خوشمور خوشحال بودم که نمیدانستم در عالم بیداری هستم یا در عالم خواب آن وقت به زبان عربی شکل خدای را به جای آوردم که از آن مصیبت بزرگ زهایی یافته بودم. آنگاه خداوند توانا راحتی آسایش به تو میبخشد و حادثه ناگوار را به حالت خوشنودکننده ای تبدیل میکند آنگاه یکی از سیاه‌پوستان بومی به طرف من آمد و با زبان عربی به من گفت برادر از اینکه ما را در اطراف خود میبینی هیچ ناراحت نشو ما سکنه بومی این سرزمین هستیم امروز صبح به این نقطه به کنار این نهر که آب فراوان دارد آمدیم تا راه آبی برای آبرسانی به مزاره خود که محل کشت است احداث کنیم مشاهده کردیم که از دور تختی بر روی آب شناور است با عجل خود را به آن رساندیم و دیدیم که تو در روی آن به خواب رفته ای در نتیجه تو را در این گوشه نه جای دادیم و تختی شناور را هم به گوشه ای بستیم و در انتظار نشستیم تا تو از خواب بیدار شوی بومیها از من خواستند که سرگذشتم را برای آنان شهر دهم و بگویم کجا هستم چه حادثه مرا به اینجا کشانیده. و چگونه جرأت کرده به این قار و رودخانه پا بگذارم و...